مرز های دانش برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، شان گرامی، گون گیر می حمیانا لژمان با درود دو امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید همطور که آیدین عزیز گذاشته و آماده روزهای آینده باشید خوشحالم که به آگاهی شما برسم که در برنامه امروز خانم دکتر ناهید رازی برای ما پیرامون شیمی درمانی دقیق و هدفگیری شده تارگت کیموथेراپی خواهند گفت خوام دکتر رازی مدیر آمل و بندیانگزار اکد دوا ایشان دکترها پیشتی خود را در 1995 دانشگاه اپسالای سوئد دریافت کردن سپس در دانشگاه کالیفرنیا سندیگو دیگو های خود روی کامپلیکس گلایکن مالیکولز مولیکول های پیچیده که مربوط به گلایکن ها میشن نایی کاربوهیدرات اینا که مربوط به قهند ها هستن این مطالعاتو رو دنبال کردن مکانیسم های نوینی کشف کردن که در آنها گلایکن سیستم ایمنی ما را فعالتر و کارارتر میکنند در سال 2001 به کار در انستیتوی پژوهشی پرآوازه و مشهور سکریپس پرداختند و به کنسیپسیوم فانکشنال گلایکومکس در لاحویه های سندگو پیوستند گروه هم دکتر در سال 2001 بزرگترین سیستم مایکرو ار را ایجاد کردند این سیستم این امکان رو به پجویشگران میده که واکنش ها و ارتباط های سلول با محیط اطرافش رو بررسی کنن سل، اموارمنت، کمیونکیشن به موضوع کارهای علمی و دانشگاهیشان دکتر رازی را در سال 2006 تأسیس کردن که در آن فعالیت ها و پژوهش‌ها ها در راستای درمان سرطان از راه های شده مثل Targeted Chemotherapy که دقیق شخصیه یعنی Personalized یعنی بهترین درمان ویژه برای هر بیمار این رو برسی کردن و رو اون کار میکنن خواهیم دکتر رازی Glycan Biomarkers یعنی مشخصه های زیستی که از جنس این هستن روی سلولا کشف کردن که در پاسخ دادن سلول سرطانی به درمان نقش اساسی دارد حاصل این کشفیات به وجود آمدن دو تست در زمینه سرطان تختان یا اواری بوده که میزان جواب دادن سلول سرطانی رو به درمان و دارو مشخص میکنه دکتر روزی برای ما خواهند گفت که این پژوهش‌ها ادامه دارند و امید زیادی به موفقیت و سودمند بودن آنها وجود دارد ایشان سه پتنت دارن. بیش از سی مقاله علمی در جورنال های برج سو کردند، کردن چهار بخش در کتاب های ارزنده نوشتند نویشتن سخنرانی های متعدد در کنفرانس های علمی را دادند و از فعالیتشان قددانی می شود خواهیم دکتر رازی به برنامه امروز خوش آمدید و خواهش بله خواهش میکنم از پجورش بله بفهمید بله شما انقدر اینا رو با بسراد تفاظیر علمی گفتید که من خودم هم امپرس شدم <تصفيق> خیلی متشکرم با سلام خدمت شنوندگان عزیز و با سپاس از شما آقای دکتر نواب و دیگر دوستان و همکاران در انجامن استادان و پژوهشگران ایرانی خیلی مچکر هستم که این فرصت به من دادید که این گفتگو رو با هم داشته باشیم امروز امیدوارم که همه آخر هفته خوبی رو گذارنده باشید و من میتونم اطلاعات مفیدی در اختیارتون قرار بدم بسیار سپزگزار خانم دکتر بسیار مردم میپرسن چرا سرطان در مال عالی و کامل نداشته شککن نشده با وجود این همه تکنولوژی پیشرفته واقعا تفاوت سرطان و با سایر بیماری های شدید چیه آمار خوشبینانه ای داریم آینده چی میگه به ما ممنون میشم خیلی خیلی ممنون خیلی سوال جامعی هست آقای دکتر و واقعا این سوالو خیلی ها تا حال خیلی هم من از خودم کرده بودم زمانی هایی که واقعا در، اینقدر درگیر نبودم با پژوهش‌های شای سرطان و هم خیلی از من میکنن برای اینکه که برای هر کس ممکنه پیش بیاد سوال بکنه که خب این همه بیماری ها بودن که در دیدیم در سال که ادقل ما به میدونیم از نظر تاریخی مثل سیل، مثل تاون، جزام، حتی ایدز بیماریهایی که در هر مقطع میان و حمله میکنن و واقعا همه رو میترسونن اپیدمیکایی به وجود میاد ولی بعدا اینا مهار میشن و موالجه میشن و بعد دیگه آدم ترسی ازشون نداره در حالی که سرطان با یه سابقه ای شاید حدود سه هزار سال بیشتر از سه هزار سال سابقه که الان میگن در فصیل ها و در آسخان اینا رو مشاهده کردن همیشه بوده با بشر و همیشه هم بخش مهمی از فعالیت های همه پجوهشگره ها برای مبارزه با این بوده و این هنوز باقی مونده و ما هنوز داریم باهاش می‌جنگیم. می ما فکر میکنم جواب این سوال واقعا در تعریف خود بیماری سرطان نهفته شده باشه امروز سرعتان رو به عنوان یه بیماری دیگه نمیشنستن اگه تفقد کرده باشین همه جا خود شما هم اشاره کردین بهش میگن بیماری های سرعتان به خاطر اینکه سرطان این سرعتان مجموعه از صدها بیماری است که فقط یه مشخصه دارن که با هم درش مشترکن و اون اختلال در رشد و تکثیر سلول یعنی وقتی که رشد سلول از کنترل خارج میشه سلول میتوره سرطانی بشه. درست. ما می‌دونیم که همه سلول‌های زنده رشد می‌کنند. اما این رشد باید بر اساس یه ریزی کاملاً دقیقی صورت بگیره. یعنی باید کاملاً کنترل شده باشه. اولاً باید ت... سرعت تقسیم این تقسیم سلول باید کاملاً کنترل شده باشه. سرعت زیاد کنترل خراب می‌کنه. من وقتی این تقسیما به یه حدی رسیدن باید رشد و تقسیم سلول متوقف بشه. اینم کاملا تنظیم شده است. بس به من نه تنها این رشد باید متوقف بشه بلکه یه تعدادی از ها باید با مرگ طبیعی از بین برن. نهایتا تعداد سلولهایی که باقی میمونن و دارن کارشون رو انجام میدن به طور منظم همه کنترل شده باقی میمونن. خب حالا موقعی که این عوامل در هر کدوم از این عوامل یه اختلالی پیش میاد اون موقع که میتونه موجب سرطان بشه یعنی ما میگیم هم تقسیم سلولی هم مرگ طبیعی یا برنامه ریزی،, ریزی شده یه سلول دو تا فرایند مهم هستن که اصلا اساس زندگی رو تشکیل میدن حالا اگر که در این دو تا فرایند یه اختلال پیش بیاد خب طبیعیه که به سادگی نمیشه باش مقابله کرد یعنی اینا واقعا با زندگی سر و کار دارن. این دو تا فراوان مهم یعنی این دو تا به صورت عمیل و عمیق مهم یعنی تقسیم سلولی و مرگ طبیعی یا برنامه رزی شده سلول که ما می امروز امروزه بهش اپوتوزس میگن وقتی که این دو تا به هم بریزن اینو تحت یک شبکه یعنی تحت شبکه های بسیار دقیق پایامرسانی دارن کنترل میشن یعنی صد ها شبکه در سلول های مختلف وجود داره که این تنظیم این کارو داره کنترل میکنه و هر کدوم از این شبکه ها صدها مولکول و صدها عنصر در اشتخالت داره که این مثلا تقسیم سلول یا مرگ سلول رو تعیین بکنه حالا مثلا اگه یه پیامی از بیرون به سلول برسه به یه سل... به سلول خون برسه که باید تقسیم بشی به خاطر اینکه یه باکتکی وارد خون شده وارد بدن شده، فاصلصد هامال و کوول در آن واحد به حرکت در میان تو این شبکه ها به همدیگه پیام میدن تا این پیام ها بررسونن به دینه دی که خب دینه دی بدونه که حالا باید پروگرام تقسیم سلولی شروع بشه بل. و یا اگه یه سلولی به هشه صدمهی بخوره و سلول به یه شکلی در بیاد که دیگه داره از بین میره و بدن تشخیص بده که باقی موندن این سلول دیگه به نفع بدن نیست و موادی که این داره ترشوه میکنه به ضرر بدنه یا مثلا اینفکتت شده بلافاصله این پیام میرسه دوباره به دینه دی سلول بر اصلا یه سری پیام های دیگه شبکه پیام گیریه دیگه و دینه دی به دی دی‌ان‌ای شروع میکنه به برنامه ریزی کردن و میره بیرون که خب حالا این سلول بعد از بین بره. حالا وقتی این قسمت به هم بخوره، در موقعی که سرطان ممکنه، یعنی سرطان به وجود میاد، بروز میکنه. بنابراین فرقش فرض کنین خیلی ساده بگیم با ایدز مثلا چیه؟ ایدز میدونیم که مثلا 1980 شناخته شد، بیماری خود شناخته شد، بعد مشخص شد که یه ویروسی به اسم HIV این ویروس حمله میکنه به سلولهای ایمنی حمله میکنه و بعدم چیزشون به سلول عوارضش هم مشخصه و در طی سی سال گذشته تحقیقات کاملا متمرکز بوده روی شناسایی این سلول و شناسایی عوارضی که این به وجود میاره و دواهای بسیاری هم به وجود اومده و الان هم دارن پیش بینی میکنن که خب حداقل تو آمریکا دارن کنترلش میکنن و از بین میبرنش در حالی که سرطان معلوم نیست که در اثر چه عاملی میتونه به وجود بیاد و تازه وقتی هم به وجود اومد به همه سلولای بدن میتونه سرایت بکنه یعنی بروز بکنه به همه سلولا میتونه همه سلولا رو تخریب بکنه و مشکل عدم تکثیر سلولی رو به وجود بیاره و بعد به اصطلاح موجب قده یا هم تمام بشه که ما میدونیم در بیماری در بیماری سرطان هست خب این نشون میده که چقدر سرطان پیچیده‌تر از هر بیماری دیگه‌ای که ما تا به حال شناخت. خب این قسمت البته یه خورده رس ناراحت کننده موضوعی که آره سرطان یه مسئله پیچیده اما خبر خوب اینه که واقعاً بشر سب نکرده که چون این کار شخصی در مقابلش ایستادگی کرده و ما میبینیم که حالا فرض کنید سه هزار سال گذشته رو بذاریم کنار ولی واقعاً در 50 سال گذشته پیشرفت هایی که برای درمان سرطان شده همه حیرت انگیز بوده و واقعا آمار بسیار خوبی هست برای اینکه در چندین سال گذشته چقدر سرطان کنترل شده و مثلا آماری که میرن من اتفاقا همین برای همین برنامه شما یه خورده داشتم به آمار نگاه می‌کردم به خاطر اینکه اجزای بدین که این آما رو من پیدا بکنم اگر اجزای بدین خواهم دکتور بعد از پیام ها ممنون میشم خیلی متشکرم مرسی همین سه‌شنبه 1 کو بعد از ظهر دکتر فرشته امین نویسنده کتاب رمز موفقیت ایرانیان در آمریکا و مدیر امین لیدرشپ سنتر در مورد موفقیت و خوشبختی با شما صحبت می‌کند 310 922 8041. همین شب 9 بامداد به سخنان آقای هاروت کروسیان وکیل رسمی های آمریکا در رابطه با مسائل ناشی از خسارات وارده به منازل و محل کار شما و چگونگی دریافت خسارات از شرکت های بیمه توجه فرمایید 818 986 9331. ششصد و هفده دانش. برنامه از آرمانیوس استادان و پژوهشگران ایرانی. شهر گرامی، دوستان ارجمند، پای گفتار سرکار خانم دکتر ناهید رازی هستیم که پژوهششون روی بایومولکول ها و مشخص های زیستی روی سلول هاست که از گروه قند ها، گلایکن ها و اینها نقش دارن در ارتباط سلول با محیط دورورش برامون گفتن که چرا سرطان پیچیده تر از بیماری های دیگه است و این دو سه هزار سال همیشه وجود داشته و مجموعه از نیمی شده خیلی قشنگ به شبکه ها اشاره کردن چون همه چه این ده سال گذشته این مبحث خیلی مهمی بوده که همه چی تحت کنترل شبکه هستن و دراخر لطف کردین خانم داشته گفتین که آمار خوشبینانه ای هست که میخواستیم برای اون بگید بله گزارشی که مرکز ملی سرطان آمریکا معمولاً از سال 1975 تا مجلس چون بودجه در اختیار مرکز ملی سرطان NCI قرار میده اونا هم بعد هر سال گزارش بدن و در گزارشی که در سال 2012 NCI به مجلس اون بفرده میگه که در مورد آمار مربوط به سرطان میگه که از سال 1998 تا سال 2012 مرگومی در اثر بیماری بیمارهای سرطان در مجموع یعنی کامبینیشن سرطان ها هر سال کاهش پیدا کرده بابا. و مهمترین که به خصوص روند بروز چهار بیماری شایع سرطان یعنی سرطان پروستات، سرطان سینه، سرطان ریه و سرطان روده بزرگ در 15 سال گذشته هر سال روبه پایین بوده چالی. یعنی واقعا علا این که خود من هم حتی وقتی تو اینترنت نگاه میکنم اینقدر میبینم یه آمار ترسنا رو اینایی میاد که آید داره خیلی همه جا رو میگیره اما نه واقعا اینجا ما خوشبختانه تو مملکت آمارا زندگی میکنیم و آمارا میده که نه واقعا انداز بسیار خوبه جالب این جالب که تشخیص بیشتر میشه گزارش بیشتر میشه آگه رسانی و با وجود این این چارتا کم شدن خیلی این پررسیو و بعد یه،, یه قسمت دیگه از این ریپورت میگه که تعداد کسانی که بعد از تشخیص بیماری سرطان بیشتر از 5 سال زنده موندن البته دقت کنین که میدونین یعنی که این 5 سال مدتی که اینا رو دنبال میکنن نه که فقط تا پنج سال زنده میمونن ولی دیگه بعد از 5 سال دیگه خب دیگه زنده موندن باقد دنبال نمیکنن تعداد کسانی که بیشتر از پنج سال زنده موندن، تا به امروز رسیده به حدود 62 ممیزه 7 درصد و پیش بینی میشه که تا 5 سال دیگه بشه به 73 درصد یعنی 10 درصد تا 5 سال دیگه به این افرادی که باقی میمونن بسید واقعا معالجه میشن اضافه میشه بنابراین خوشبختانه چشمنداز بسیار خوبه خیلی روشنه و تحقیقات هم همونطور که میدونیم داره خیلی خوب پیش میده چقدر خوب بسیار علی ارزم بزرگتون این یاد من رو یادی چند تا چیز می که گذشته از داروهای خوب تشخیصهای خوب مثل همه بیماره های دیگه و مراقبت از این که آدم شانس گرفتن رو سرطان کم بشه در اون بیشتر شده یه چیز خیلی جالب هم دکتر چندسل پیش مانشنی در میخوام دکتر پتی گنز در دانشگاه ما ایشون یه مطلبی رو بزرگ کرد در جامعه به اسم سوروایورشپ یعنی میگفت که ما بیمار سرطان رو میاریم درمان میکنیم غیر بعد که میره خونهش و بین خانواده اینها اون ت... طور که باید و شایدی نمیدونه چیکار کنه چیکار نکنه و رفتن روی موضوع سروایوورشیپ رو زیاد کنند که کین از هر نظر جسمی روحی روانی خانوادگی اشتم خیلی جعب. جالب خانم دکتر برامون بگین که چه هایی برای سرطان هست شیمی درمانی و اون انوا... تارگتید کیمو فرقش با استاندارد کیموترپی چیه چرا تاکید دارین روی اینکه پرسونالایزد باشه درمان‌ها خیلی ممنون میشم چش خب میدونیم راه های بوده از سالهای از اون ابتدا اولین راه مدابای سرطان جراحی بوده چون طرح. به مرزین که قدر تشخیص میدن جراحی راحتنی که بسلاب به طور فیزیکی درش بیارن اه. ولی اه چون سرطان سلولای سرطانی تمایل دارن به پخ شدن و یا به سلولای آمیانه میگن ریشه میدونن اینا همیشه جراحی نمیتونه به تنهایی کار مالجه را تموم بکنه همیشه باید دروبر این قدر را هم تا اونجایی که میشه از سلولایی که ممکنه سرطانی شده باشن خالی کرد در اوائل سال 1200 رادیو تراپی یا پرت و درمانی درست. به فاشی پرت درمانی متداول شد و یعنی کم کم معرفی شد البته فکر میکنم 1901 یا تون تو حدود بود که پرت درمانی شروع شد و بعد تا اوائل سالای 1940 یعنی تا زمان جنگ جهانی دوم راه های معالج سرطان جراحی بود و همین راژیو در سالای جنگ جهانی به خاطر سلاح های شیمیایی که دانشمندان ها یا مجبور شده بودن که طلا های شیمیایی تهیه کنن برای جنگ دانشمنده ها متوجه شدن که این سلاح های شیمیایی وقتی که به م... کسی در معرضش قرار می گیره و اینار تنفس میکنه بر برای کسی سیستم تنفسی رو خراب میکنه و آدمها از بین میبره ولی تعداد گرلولایی سفید خون رو هم تعداد اصلا کلا خون رو هم خیلی تعداد میاره پایین. و این یه عاملی بود که فکر کردن خب حالا علا رقم این که اونا رو اون موقع برای جنگ درست کرده بودن ولی از این کار میشه برای دارو استفاده, ب... استفاده کرد و اینجا شد که شیمی درمانی وارد شد به ب... یا اضافه شد به جراحی و رادیوتراپی به این ترتیب که این موادی رو که عملا سمی هستن یعنی ما بهشون میگیم سایتا تاکسیک و کلا برای سلول سم هستن اگه به اندازه متعادل وارد بیمار سرطانی چیز بشن بیمار سرطانی در موردش قرار بگیره اینا میتونن سلول سرطانی رو که دارن به خیلی سری تقسیم میشن اینها رو از بین ببرند و در نتیجه خیلی کمک کنند به شناسایی سلول سرطانی در بدن در اطراف بدن در چون گفتیم سل سرطانی پخش میشن و اینها رو از بین ببرند اینطوری بود که شیمی درمانی توی همین 1950 و خصوص دیگه متداول شد و از اون موقع شاید بیشتر از 3000 هزار دارو که همه شده هم همون سایت تاکسیک بودن اینا هی از این طرف اون طرف ابداع شدن به وسط مواد شیمیایی ساخته شدن یا از مواد طبیعی استخراج شدن که اینا رو به عنوان دارو سرسان هر کدوم هی امتحان میکردن تجربه میکردن یکی از بس گروه داروهایی که خیلی موفق بود تو این رابطه و در ساله 1970 ساختنش داروهایی بودن که ترکیبات پلاتینی هستن امروز پلاتین نام دراغیز میگن و اینا هنوز هم هنوز هم یکی از متداول ترین داروهایی هستند که برای شیمی درمانی به کار میرن بعد از اون تو سال 1980 یه سری دیگه داروهایی بود که دومان پکت تکسل و ترکیبات اون که از مواد گیاهی گرفته شدن اونها هم اضافه شدن به این داروها و این دو دسته دارو و اصطلاح اینا داروهایی هستند که هنوزم اینا متداول‌ترین داروهای شیمی درمانی هستند و ما اینا رو به عنوان استاندارد کیموتراپی میشناسیم یعنی اینا به طور عمومی در اغلب ها معمولاً توی همه به رژیم رژیم‌های شیمی درمانی که میدن اینا رو هم اضافه می‌کنن برای اینکه اینا سَم عمومی هستند و اثر خوبی نش یعنی درصد بالایی نشون دادن که به بیماری سرطانی کمک میکنه. ولی خب اینا همه تجربی بوده یعنی نشون میده که خب اینا چه یعنی توی این تعداد فرد کنید سه که تایی که میگیم در همین حدود که پیدا شده کدومشون بهتر کار میکنن و اینا چیزایی بوده که بهتر کار میکردن ولی اینی که بهتر کار میکنه دلیلش نیست که واقعا بهترینی هم که میتونه باشه باشه اه. و اینا دو تا رفت خیلی مهم دارن این داروهایی که به به شیمی درمانی استاندارد که الان در مورد استفاده هنوزم خیلی زیاد داره قرار میگیره دو تا مهم تو اینا هست یک اینکه این داروها اختصاصی نیستن یعنی مختصن نمیرن فقط سر سلول های سرطانی رو بکشن همه سلول های دیگر هم میکشن و اینو تقریبا همه میدونن به خاطر اینکه عوارض شیمی درمانی همه عوارضیه که فرض کنید ریختن موها یا از بین رفتن سیستم ایمنی یا سلول های به سلال گوارشی خراب شدن سلال گوارشی اینا همه سلال هایی هستن که در حال تقسیم هم و به وسیله این سموم که وارد بدن میشه اونا هم از بین میرم بنابراین نمیشه این دارو رو به مقداری استفاده کرد که بتونن که بتونه همه سلال سرطانی رو بکشه چون قبل از اون به خود بدن ساده میزن <تصفيق> این یک چیز مهمشه یک مثلا محدودیت مهمشه و محدودیت دیگه اینه که این در همه آدما تاثیر نمی کنه یعنی متاسفانه این دارو علارغم اینکه سم من به به مریض داده میشه ولی علارغم اینکه همون سلولای طبیعی رو ممکنه خراب بکنه ولی سم رو تاثیر نمیذاره بهش و این دیگه واقعا تاثیر بسیار بدیه برای اینکه عملا سم به مریض داده میشه و مریض رو ضعیفم می‌کنه و اثری هم بهش نداره من واقعا یکی من با یه خانم دکتری که صحبت می‌کردم میگفت که ما خب ما میدونیم که وقتی داریم این نسخه رو مینویستیم چقدر میگفت من نگرانم همیشه وقتی دارم ام. نسخه رو مینویسم که آیا واقعا دارم درمان مینویسم برای مریضم یا این که ممکنه این حالشو بدتر بکنه درست. و منتظرم که مثلا این بعد از 3-4 ماه که ما این دارو رو میریم اوزمه کنیم ببینیم خوب شد یا نشد و حتی برای همه مریضا ما این مشکل رو داریم و اینجا است که علاوه رقم این شیمی درمانی واقعا یک برکت رو یک شکستن مردها بود برای درمان سرطان ولی دوباره میبینیم که برخورد به همین مردی که الان باهاش مقابل هستن و اون اینه که همه سل مریضا رو با این درمان ها نمیشه موالجه کرد و هر کدوم از مریضا به یه درمانی جواب میدن و که پیدا بکنیم کدوم مریض حالا به کدوم درمان بهتر جواب میده این واقعیه موزلیه این این داستان مردا که به اشتراک دادن منو یاد یه سف خاطره ای انداخ از زمان گذشته حالا بر این درزنه. برای اینکه شاید خستگی شما در دارم اینو بگم بله بفهمم این من یادم میاد که ما که بچه بودیم برنامه های دانش از رادیو ایران پخش میشد داشت. و اگر که خاطرم باشه یه روزای تعطیل بود روزای نصف شب بعد از ظهر بود پدر من خیلی به این برنامه علاقه داشت <متصف> و من و ما ایشون همیشه می نشست بلافاصله سر این آرم برنامه می اومد با اون صلابت می گفتن مرتوی دانش <متصف> و با اون می نشستینو گوش می ما و ساکت می شد <متصف> و این برنامه واقعا همیشه من اصلا نمی فهمیدم این های دانش یعنی چی <متصف> اصلا خوشم هم, هم نمی اومد در حقیقت شما رو <تصفيق> خیلی محدود می‌گه <میکر. تصفيق> و یه روز که بالاخره نمیدونم بابا به من گفت که بیا بشین اینجا و ساکت باشو بشین اینجا گوش بده ببین چی میگه من نشستم ببینم این برنامه چی میگه دیدم راجع بیماری‌ها داره صحبت میکنه آ بیماری‌های چشمم هم هست یادم میاد که هی این بیماری گفتم بیماری گفتم بیماری گفت و من که هیچ چیزی نمی‌فهمیدم آخرش فقط نتیجه گیری این بود که او من دریافت مهم کردم این برنامه اسمش مرزهای دانش <تص> و و واقعا فکر می کردم یعنی که این اینطوریه یعنی من من نمی فهمم مرض دانش بعد که به بابام گفتم بابام توضیح داد که نه نه این مرض های دانش نیستی مرزهای مرض های دانش که <تصفح> و برام هی توضیح داد دا من اون موقع که اصلا نفهمیدم جریان مرض های دانش چیه بعد سالها بریشم هم نفهمیدم تا با بعد وقتی که شعر تقریبا همین هاست که تازه می فهمم مرض های دانش یعنی چقدر یعنی که این واقعا این دانش و علم و این تحقیقاتی که میشه میرسه به یه جایی که آدم فکر میکنه خب رسیدیم به این مرز این, این برکترو شد این کار انجام دادیم دوباره میدیم با این یه محدودیت دیگه همراهش اومد بسیار سپاسگار آید جام بریم به پیام ها ممنون با حضور در پرژن سکویر در ویست بود حال و هوای وطن را احساس کنیم جمعه به جمعه سلام من و شنگ توضیح و از این پس در جمعه شب سیکس 670 در یک برنامه رادیوی از ساعت هشت و 9 شب با رویدادهای های هنری و فرهنگی ایران و جهان با شما خواهم بود جمعه به جمعه شب موسیقی و تنزو و نمایش جمعه به جمعه از همین جمعه از یونیورسال سیتی کالیفورنیا اینجا کئی آی آر 670 AM، سیمی ولی لوس انجلس مرزهای دانش برنامه از هنجمن استادان و پشوشگران هیدانی منرگمی شانس گنجمانه پای گفتار سرکار خانم دکتر ناهید رازی هستیم که برای ما در مورد سرطان درمانای تخصصی تارگتت کیموथेراپی پرسونالایز تریتمنت رو این مقاله صحبت میکنن برامون گفتن که چرا پیچیده بوده درمان سرطان در خلال سال ها دهه ها و غرن ها و شروع کردن درمان ها رو گفتند که در حدود 110 سال پیش، 115 سال پیش جراحی شروع میشه و بعد کیموتراپیو دنبال داریم میکنیم داروهای عمومی رو گفتند و ارزان بزرگتون لیمیتیشن هاشون و محدودتی هاشون سرکر دکتر میفهمیدید بله، بله خب گفتیم که با شیمی درمانی واقعا مرد درمان سرطان شکسته شد ولی دوباره رسیدیم به این محدودیت که شیمی درمانی های سندارد که همین تو دارای سممی هستن همه سلولار از میبرن حالا برای این که به این محدودیت و اصطلاق قلبه بکنیم باید راهی پیدا کرد و این راهش اینه که داروی هدفدار یا تارگتت تراپی رو ابداع بکنن که پشگر واقعا در این رابطه از 20 سال گذشته کار کردن و حقیقت هم به دست آورای یا دوره هدفدار صبته کنیم خب یعنی که دارو باید بره و فقط سلول سرطانی رو از بین ببره و سلول های نرمال کمتر بهشون هداقل صدمه بزنه بله. برای اینکه سلول سرطانی رو از بین ببره و ببینیم که چه مکانیزم در سلول سرطانی هست که بستهله اینا از کار افتاده و مختل شده بنابراین این, این مکانیزم ها رو یا عناصری رو که در این مکانیزم ها تو این پیام رسانی ها دخالت دارن اینا رو بتونیم هدف قرار بدیم سه تا مکانیزم هست در بدن که اینا با سلول های سرطانی همیشه همراه هستند یکی گفتیم همون تقسیم سری سلولی که سلولا زیاد از حد تقسیم میشن تا دوشون زیاد میشه یکی مرگ طبیعیه که از کار افتاده سلول که بعد بمیرن نمیمیرن باقی میمونن تا دوشون زیاد میشه و سیستم بعدی یا مکانیزم بعدی که این سلولا رو همین زنده نگه میداره و بهشون انرژی میده سیستم قزواریستانی و خونرسانی به اینا هست <تصفيق> که این سیستم با ساخته شدن رگای جدید ساخته میشه یعنی این سلولای سرطانی همراه خودشون دو تا عامل میارن که این دو تا به ادامه زندگی اینا کمک میکنه یکی اینکه به مووادی تروه میکنن که اینها موادی هستند که در حالت طبیعی فرض کنیم در موقع زخم ماین ها سل های طبیعی ترشوه میکنن که اینا به سلول های چناری اطلاع بدن پیام برسونن که ما به ما به خون, خون جعبرقای جدید احتش داریم در نجه خودتون شما اینو بهتر از من می نیست که به سلول ساخته شدن رگاه جدید به این صورت در حالت طبیعی اتفاق میفته این سلول های سرطانی از این مکانیزم استفاده میکنن و برای خودشون رگاه جدید درست میکنن یعنی صدا میکنن که او رگ جدید احتیاج از این پیام رو و رگاه هم به اینا شعبه میدن و قضا میرسونن بنابراین سه تا میکانیزم اگه ما جلوشو بگیریم میتونیم اینها رو البته ببخشید من در مورد همین که گفتم دو تا دو تا آمل و اینا در اختیار خودشون قرار یکی سیستم خون خودشون رو زیاد میکنن و یکی هم که یه موادی میفرستن که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنن دوشه. که سلول های ایمنی اونا رو تشخیص ندن یعنی اینجوری هم خودشونو حفظ میکنن علاوه <تصفيق> تقسیم سریعشون مرگ طبیعیشون سیستم قزو رسانی که برای خودشون درست میکنن و ضعف کردن سلولهای های ایمنیه بعدا اینا مکانیزم که اینا سلولهای های سرطانی درش زندگی میکنن حالا باید هدف این, این چند تا بسام مکانیزم رو اناسای رو که در این پرامرسانی ها دخالت دارن اینا رو باید هدف قرار داد و واقعا اینا کارای دشواری بوده که توی این سالهای گذشته انجام شده و دو داروهای هدفدار تعداد داروهای هدفدار خیلی زیاد شاید یه چیز حدود فکر می‌کنم الان یه چیزای حدود 20 تا دا دارو هدفدار بیرون هست تا ارائه شده ولی اون چی که داره تا به بازار میاد تعدادش بسیار زیادتره یعنی من یه ایمیلی داشتم هفته گذشته از سلجین که یه سخنرانی داره ویس پریزیدنت ریسرچ ششوی سخنانی داره راجع به این ثبت میکنه که چهل تا اینا فقط داروی هدف دارتی کلینیکا ریسرچ دارن ببا. و این نشون میده که حالا هر کدوم از این شرکت دارویی فرض کنه یه چیزای عدود حد اقل چهل تا هر کدومشون دارن مهم. نشون میده که واقعا هزارها داروی هدف دار تارگید توی بازار, بازار ارائه خواهد شد حالا هر چند تایش که بگیره با با بگیره ولی بازم خیلی خوبه خب این محفقیت که در مورد داروهای های هدف دارد اما دوباره ما از یه مرز گذشتیم رسیدیم بگه محدودیت این داروهای هدف دار خب هدف قرار میدن منطقه مشکل اینجاست که سلول های ما چه در مورد اون استاندارد تیمترافی که مواد سمی باشن چه این تارگیتت کیمترافی که مواد اختصاصی باشن در مقابل این داروها همشون یه شکل نیستن توش. همه مکانیزم ها در همه سلول ها مشابه هم نیست <تصفيق> و در همه مریض ها مشابه هم نیست بنابراین یه دارویی که یه دارویی که میتونه واقعا یک مکانیزم و خیلی خوب هدف قرار بده توی یک مریض توی مریض دیگه کاملا بیستره <تصفيق> و در نتیجه دوباره اگر که یه دارویی به مریضی بزنیم که خودش مریض هست و یه داروی هم بهش بزنیم که ترش نهشته بشه اینو ضعیف تر میکنه. مثلا یه نمونه بارزی از این داروهای هدفدار هرتسپتین هست که فکر می‌گم اوایل سال 2000 مهم. به بازار عرضه شد برای سرطان سینه دوش. و چقدر این موفق چقدر این قویه به خاطر اینکه این یه انتیبادی هست که درست میره روی گیرنده به خصوصی که به برای تکثیر تاکسیر سلولی اهمیت دارن و تعدادشون روی تعدادشون روی سلولای سرطانی سینه خیلی زیاد میشه به اصطلاح اووراکسپرس میشه درست. و همه فکر میکنن اوه خیلی خوب شد تارگت داروی تارگت برای سرطان سینه ولی امروز معلوم شده که فقط 20 درصد از مریض‌ها این اووراکسپریشن رو دارن یعنی 80 درصد مریضای سرطان سینه این دارو بهشون اثری نداره حالا ما بیاین پس قدم بعدی باز یعنی رسیدیم به یه محدودیت دیگه قدم بعدی چیه حالا باید تست هایی پیدا بشه که همراه هر دارو بیاد بیرو <متصف> یعنی هر داروی هدفدار یه دونه تست هم باید همراهش باشه که اونو بهش میگن کمپانیان داگنوستیک تست و این یه اصطلاح جدیده عملا حالا اگه بخوام بسیار دقیق تر بگم تحقیقات ما درست توی این قسمته کمپانیان داگنوستیک تست هست درست یعنی ما دارو نمیسازیم، ولی ما تست هایی می سازیم که بتونه این داروهایی رو که ساخته میشه، شه اینا رو بتونه تست بکنه و بینی بکنه که آیا این دارو به مریض, ج... مریض به این دارو جواب میده یا نمیده. ده شعالی. برای مریض این دارو خوب هست یا نه مهم. و اینجا هست که پرسنلایزد کیموثرافی به اصلاح وارد میشه، یعنی تست هایی که نشون بده هر مریضی چه خصوصیاتی داره چه مشخصات مولکولی داره بعد بر اساس اون مشخصات مولکولی حالا که ما یه سری داروی زیاد داریم کدومو انتخاب کنیم به مریض بزنیم مه. یعنی به اصطلاح مچ کردن حالا مچ کردن نمیدونم فارسی دقیقاً چی میشه ولی اینو یه چه دارویی به چه مریضی می این پرسونالایز کیموथेراپی یعنی شیمی درمانی شخصی مه. خب برای اینکه ب... برای که این تست ها را آدم ابداع بکنه اساس به وجود وردن این تست ها مولکول هایی هست یا یک فرایند سلولی هست که بتونه ارتباطش رو، ارتباط سلول رو با این دارو با جوابی که به دارو میده اندازه گیری بکنه و این اناسور حالا یا یا میتونه یه مولکولی باشه روی سلول یا درون سلول که میتونه علامت قرار بگیره به اسطلاحی که از دوستان من میگفت زنگولهی که به سلول اه. هست که نشون بده اه. که آیا این مارکر این علامت رو سلول هست حالا اگه این علامت باشه به این دارو جواب میده اگه این نباشه به این دارو جواب نمیده این،, این علامت رو ما بهش میگیم بایو مارکر این اصطلاح هست که به استاین که توی این ده سال اخیر خیلی متداول شده تارگت دراپیک پرسونलाइज کیموथेراپی می دونم کمپانیان داگنوستیک اینا و بعد بایو مارکر اصل و اساس همه اینا هست یعنی باید بایو رو پیدا بکنیم یعنی علامتی رو که نشون بده که آیا سلول آیا این مریض به این دارو جواب میده یا نه این بایو مارکر ها الان میتونه از مولکول های مختلف باشه بیشترین تمرکز روی ملکول ها روی جن ها بوده و یا روی کلن ملکول های جنی ملکول های جنی نه جینوم اگه بهش بگیم همه اونایی که به جنتیک ارتباط دارن دینه و آرینه و, و توی 25 سال گذشته همه دنبال بای مارکر هایی هستن که خب یه جن به خصوصی باشه که اگر این وجود داشته باشه نشون میده به دارو جواب میده یا اگر نباشه نمیده بعد هم به همراه این ملولکول های ژنی ملکول های پروتینی یا پروتاممیکس هم میدونین دیگه اصطلاح ژاممیکس یعنی اینکه تمام ژمه یا DNA RNA سلول بررسی بشه یا پروتتیامیکس که تمام پروتئین های سلول بررسی بشه و اینا مقایسه میشه با هم دیگه حالا ببینیم که یه با مارکری از جنس پروتئین هست یا یه بای مارکری از جنس ژینوم هست اینا تقییضاتی که خیلی زیاد در 25 سال گذشته انجام شده یه تعداد معدودی متاسفانه من میتونم بگم به خاطر اینکه تعداد بایومارکر هایی که پیدا شده با مقدار بسیارا تمرکزی که در 25 سال گذشته چه انرژی دانشمنده چه پولی که در اختیارشون گذشته شده این تا به نظر من واقعا با هم نمیخونه چون شاید که از 10 تا بایومارکر پیدا شده در 20 سال مهم. قسمتی که ما کار میکنیم یه خورده از این قسمت متفاوته حالا من خودم به دلیل اینکه کلا بس شروع تحصیلاتم وقتی آمدم امریکا روی مولکولی بود من روی دی و پروتئین هایی که اون دی رو کنترل می‌کنن کار میکردم ولی بعدا من این تحقیقاتی که ادامه دادم و اینا و رفتم سوئد اونجا من به باگ لایکوبیولوژی آشنا شدم و تمرکز تحقیقاتم اومد روی گلایکوبیولوژی یعنی دقیقاً این دو تا جای دو تا دو تا اگه بگیم قطب مخالف هم دیگه قرار دارن دی در مرکز هسته سلول قرار داره و تمام پروگرامینگ سلول درش اتفاق میفته در حالی که این مولکول ها که من به عنوان به اصطلاح گلایکم با روشون کار میکردم من روی مولکول های ساخت سلول یعنی کاملا بیرون سلول قرار دارن به اصطلاح تو 20 سال گذشته تمرکز تحقیقاتم روی اینا بوده و به خاطر همین اه، اه، این شانسی که داشتم که خب حالا هم از داخل سلول ترینی شده بودم و هم بیرون سلول و این گلایکو علمی هست که عملا تو سالای دو هزار هست که تازه بهش تونستن به تو توجه کنیم به خاطر اینکه ما تا بخال همش گرفت همش نکه گرفتار ولی درگیر و شناسایی دی و شناسایی پروسئین و تازه حالا رسیدیم به شناسایی گلایکان ها که خودشون برای خودشون یک. دسته و گروه از ملکول هایی هستند که تمام خصوصیات خودشونو دارن. علیرغم که خب تماماً ژن‌هاشون در درون در DNA هست و به اون شکل ساخته میشن، ولی پیچیدگیشون بسیار بسیار زیادتر از پروتئینه. به خاطر اینکه فرض کنید ما برای پروتئین یه ژن داریم که یک دونه الگوی رو از DNA میاد بیرون و این پروتئین به طور خطی بر رو از روی این الگو ساخته میشه. بنابراین همون به کانسپت یک جن یک پروتئین <تصفيق> در حالی که در مورد گلارکن ها علاوه بر اینکه اینا ممکنه بسیار کوچکتر از یه واحد یک واحد پروتئینی که مولکول پروتئین باشه و عملا دکوریشن پروتئین ها رو برات دارن اگه یه دونه سه واحدی و چهار واحدی یک کربوهیدرات کوشید ما بخوایم بسازیم یه چیز حدود 30 تا ژن احتیاج هست که بتونه اینا رو تنظیم کنه و اینو به اون شکلی که باید بسازه چه یعنی این آنزیمشه بله آنزیمی که این اینا رو برای اینکه میدونین هر واحد کربوهیدراتی 6 تا کربن داره که هر کدوم از این ها این پتانسیل رو دارن که به یک کرب... به یه دونه واحد دیگه متصل بشه و برای هر کدوم از این کربن‌ها یا آنزیم حداقل یا آنزیم یه آنزیم لازمه که اونو انجام بده آه. یعنی تمام این آنزیم‌ها دون برای هر کربونی دونه دونه اقتصادیه. چا عجله. اگه یه دونه مولکول میخواد روی کربونه شما رو مثلا دو قرار بگیری، یا انزیم میخواد، اگه روی کربون شروع شه قرار بگیره یا دیگه و تو شش تا داره برای هر یه دونه ریاکشنی شش تا انزیم ما فقط اینه که مسئله بسیار بسیار پیچیده‌تر از سنتز پروتئینه. به خاطر همین هم هست که نه اتوماتیک شده، تماما باید دونه دونه با دست انجام داد. یعنی دونه دونه, دونه تو آزمایشگاه بعد اینا رو انزیمو زاد، اونم بهش تو گذاشت تا اینکه یه دونه که به حیدرتو بهش چند تا گلوکان داریم می خوام تقریبا خیلی تقریبه ببینین اه... ببینید تعداد واجدانی که داریم هشت در حد و تا 10 تا بیشتر نیست اوکی. یعنی به اون فرسنه اسید ها آمیناها... اه... اه... اه... تعداد اسید آمینه هایی که داریم چند تا اه... اه... این اه... پستو ساعت که بعدن نمیدونم با کدون شو اینا ولی تعداد اینا تعداد اینا یه چیز حدود کمتر از 10 تا است اونهایی که به طبیعی وجود داره بره بره. ولی پیچیدگیشون بسیار بیشتره و کامبینیشنشون به این شکلی بعد بعد خطی نیستن بعد میتونن به شکل شاخه شاخه شاخه روی سلول به وجود بیان و بعد هر کدومیشون هم, هم میتونن روی لیپید ها گذاشته بشن هم روی پروتئین‌ها گذاشته بشن گلیکو پروتئین‌ها رو بسازن گلیکولیپید‌ها رو بسازن برسته. و تمام فعالیت های فعالیت‌های فعالیت های سلول اینا به اختیار دارن و عملا تمام تفاوت های کوچیکی که در افراد دیده میشه به خاطر همین گلایتان هایشون نمونه بارزش گروه, گروه, ها. گروه های خونیه دقیقا اجیباییم بریم به, به پیاما سرکرخان دکتر و برگردیم مرسی با قدرت با تجربی جان جان ده وکیل داوطلاقی دکتر الکساندر اسکندری وکیل تصادفات و صدمات بدنی با بیش از 19 سال تجربه و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت تریل لوگرز و دکتر الکساندر اسکندری شانه بشانه با شما و در کنار شما تا سرمقصد پیروزی همراه خواهد بود در هفت خان شرکت های بیمه در کنار شما و برای شما خواهم جنگید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 برنامه دانش برنامه از انجمن استادان و, و پجوشگران ایدانی دوستان عزیز پای گفتار سرکار خانم دکتر ناید رازی هستیم که برامه دارن با, با چه بیان واقعا شیوایی مسئله به این پیچیدگی رو اونجوری میگن که همه ما میفهمیم العاده جالب برامون میگن که این قند ها این ها کاربیترات هایی که سلولاس هایی اجازه میدن که تشکیش داده بشه چه دارویی برای کنترل و ریگریت کردن سرطان خانم دکتر هر موقعی که خوب تونستید به ما بگین که خطای تلفن رو باز کنین چند دقیقه دیگه پنگ دقیقه مثلا برای. و دوستان 323-512-7264 من... پرو... 323-512-7264 حدود 650 دقیقه خط رو باز میکنیم مرسی خواهیم بکنیم میفهمیدین بله از کردم که کار ما در اکیو دوا به سلو ابداع کمپانیان دایگنوستیک تست هست تست هایی که به هم برای این داروها به همراه این داروها میاد به اصطلاح در التزام این داروها باید باشه الان توی FDA هر داروی جدیدی رو میخواد که اصلا یک کمپانی اندیوناستیک تست باید باهاش باشه ولی دو تا تستی رو که ما تا به حال پیدا کردیم و بیسش بر اساس دو تا گلایکان هست و بایو مارکر گلایکان هست که روی سطح سلول قرار دارن اینا هر دوتاش در ارتباط با استاندارد کیموتراپی هست و ستندارد کیموتراپی هنوز کیموتراپی هست که برای 80 درصد مریضو استفاده میشه این من سالهای 2001 اینو به موانی پروژه مستقل شروع کردم به خاطر اول علاقه شخصی در حقیقت اول سرگرمی من بود بعد سلو بهش علاقه من شدم یه یه, یه قسمت کچی که از یه, در یه شرکت دارویی که خب نزدیک خونه و محل کارم بود اونجا اجاره کردم و مواقع بیکاریمو و بسیلا با عنوان تفریه اونجا میگذارندم و این آزمایش ها رو انجام جلاله. میدادم و البته یکی دوتا از دستام هم خیلی از نظر فکری با هم کمک میکرد، همکاری میکردن و سپورت فکری میکردن منو اه، و اه، کم کم رسید به اونجا که واقعا دیدم این تمام اون چیزایی که برای این بایو مارکه را تصور میکردم که اینا آزمایش رو را دیزاین کردم که نشون بدم واقعا این بایو مارکه را دخالت دارن در داخل شدن دارو به درون سلول و همه اینا آز جوابای آزمایش ها خیلی مثبت میکرد. اینو دیگه خیلی بیشتر ادامه دادم و اینو آوردمش توی سAMPLای کلینیکی و یه سری از مثل ا های نمونه های مریض های سرطانی سرطان تخمدان من تمرکز این کارم بود به خاطر اینکه سرطان تخمدان یک سرطانی که تقریبا 50 درصد مریض ها به داروهای استاندارد جواب میدن 50 درصد نمیدن یعنی یه نمونه بسیار خوبی برای این مطالعه مقاومت دارو و من اینا رو روی سلول سرطانی بیمارایی که قبلا آزمایش شده بود و نشون داده بود اینا جواب میدن به, سرطان، به دارو یا جواب نمیدن یا دادن یا ندادن این نمونه ها رو از یه همکاری داشتم با در, در دانشگاه پنسیلوانیا یوپن که یه سری از این سلول ها رو از دیتو دیتابیس اونجا برای من و من اینا رو آزمایش کردم و دیدم که اینا تا حدود 92 درصد همه نشون میده جواب دادن دارو چارلی با این تست که من دارم انجام میدم و اینه که فعلا اینو آوردیمش تو بس... فاز کلینیکال تریال و ان شاءالله که دیگه, آه، آه، سپاس سوال سوال دیگه. ببینیم دوستان همجو دارن زحمی میزنند دوست عزیز بفهمید خانم دکتر جانالو بله بله بفرمایید فرزاد بفرم. زاده و سلام میکنم و بسیار سپاسگزارم از برنامه بسیار آموزنده شما سوالی که خانم دکتر از حضور حضرت علی دارم این هست که من مایل هستم که بدانم که حضرتعالی نظرتون راجب به ترین عواملی که با اس سرطان در انسان ها میشه چی هست یک و دومی که من شنیدم که فرض کنید که وژتریان ها بسیار بسیار کمتر مبتلا به سرطان میشن تا کسانی که گوشت خار هستند و به مقدار زیادی گوشت میخورند و سوم اینکه که شما آیا مردمانی رو شناسید که اینها ریت سرطان در اونها بسیار بسیار کمتر از دیگران هست و به چه دلیل؟ من مایل سپاس هستم یک اطلاعاتی داشته باشم در خصوص پریونشن از سرطان. اگر لطف کنید من بسیار سپاسگزار میشم و میشنوم. مرسی. متشکرم. ا <تصاف> <analyze> حالا من اگه همه سوالای شما رو دونه دونه به خاطر ان فایل می‌کنم در مورد اینکه چه عاملی بیشتر موجب میشه فقط در هر سرطانی من میتونم بگم که یه عامل میتونه موجب باشه فرض کنیم ما سرطان ملانوما داریم مم. میدونیم که که میدونیم آفتاب هست که بیشتر باعث میشه یا فرض کنید سرطان ریه الان مشخص شده که سیگار کشیدن باعثش میشه هر سرطانی یه, یه چیزی عاملش میتونه بیشتر تحریکش بکنه این بسته، اصلا این همین پیچیدگی سرطان همینه مم. که هر هر عاملی میتونه باعث بشه به خاطر اینکه هر عاملی یه جایی از بدن رو میتونه تحت حمله قرار بده یا مثلا اختلال ایجاد بکنه این سوال اولتون فکر میکنم بود درسته من و ویجتاری من من والا من نمیدونم من البته خب یک یک موردی من در مورد میدونم به روی تحقیقاتی در مورد گوشت قرمز که معتقد هستن که که گوشت قرمز وقتی میخوریم گوشت چون گوشت حیوانات هست و این حیوانات در گوشتشون یه اه، اه، چیزی دارند من حالا چون گلایکو بایولوجیس هستم این دقیقا ارتباط فیدام کنم با اون قسمت تخصصی من اینا یک مولکولی دارن که انسان ها اینو ندارن یعنی اینشنافته شده است تا میمونم همه این آزمایش ها شده که یه ماده به خصوصیه به خاطر یه آنزیمی که تو انسان ها به وجود اومده بسیار اونو ندارن انسان ها حالا یه تاییه سری پابلیکیشن ها هست و به خصوص کسی که اینو ارائه کرده استاد قبلی خود منم بوده من همیشه با آشی مسئله رو داشتم که خب ما اگه قبلا میخوردیم این گوشت غیرمزو و آنتیبادی الان در بدنمون به وجود اومده آمده دیگه الان اگه بخونیم نخوریم چه تاثیری داره و این من خود منم هنوز این جوابو نگرفتم اما ایشون متقده. اون الان استاک کرده دیگه. گوشت گوشت رو نمیخوره و دلیلش هم همین مولکول به میگه که این مولکول بخصوص خصوص در سطح مولکولی یک اینفلامیشن ایجاد میکنه که این اینفلامیشن یعنی چیز نیست که ما ببینیم باد بکنه بدن مو ولی در سطح مولکولی موادی که ترشح میشه مواد اینفلاماتوری ما بهش میگه این اینفلاماتوری ها ایران میتونن باعث به اصطلاح اختلال در کار سلول بشن و این اینفلاماتوری ها به خاطر اینکه ما اون ماده خصوص رو نداریم و هی میخوریم و بدنمون نمی به ما به اصطلاح گوشت قرمز مال پسند های دیگه ما می نمیخوره این میتونه اینفلامیشن ایجاد بکنه و این اینفلامیشن باعث سرطان بشه سوال در بعدش دارست دارست پرسیدن خودم. که آیا کسی هستن که کمتر سرطان بگیرن و چی توصیه می‌کنید برای پریونشن پیشگیری. من نمیدونم جوامعی که واقعا کمتر چون میدونین به خاطر اینکه تو اون جوامعی که بعضی جوامع هستن فرض کنید اه اه اه نمیدونم مثل مانک ها اینا خیلی ریلکسن ولی متاسفانه هیچ چیز آماری در اینا وجود نداره که دقیقاً درست. نشون بده حالا مقایسه بکنیم ببینیم همینطور خودم خیلی چیزا میتونه بگه مم. ولی من واقعا یه چیزی که بیس کاملا که آماری و علمی داشته باشه من نمیتونم Prevention. من چیزی بجوز همین پرویونشن که همه میدونیم که مهم. حتل امکان توی آفتاب نریم یا سیگار نکشیم مهم. یا آ... کلن یه زندگی راحت داشته باشیم استرس آقای دکتر نباب شما مهم. خودتون مهم. برای بسیار توی تحقیقات کولیسترولتون اینو خیلی اشاره میکنید که آروم زندگی کنیم آروم Smart زندگی سمارت لایف زندگی. ستایل روش زندگی حوشمندانه دقیقا خوب بخوریم خوب بخوابیم ورزش کنیم ده. و خوش بگذره مرچی که میتونیم ده. من شاید شما هستم در همین باره روانشناس رو اختیار دوست دیگه ما فقط دو دقیقه وقت داریم بفهمید الو بفهمید سلام خانم دکتر اولا اطلاعات دو خیلی جامع بود دوم من اگر ما جینوم ریپورت بگیریم که متوجه بشیم چه جین های بدی داریم که ممکنه سرطان بگیریم اگر مثلا فهمیدیم جین بد برای سرطان شکم داریم آیا میتونین تارگید کیمیو بکنین اون جینای های بدو؟ اگر نمیتونین چه راه دیگری برای از بین بردن جینای بد وجود داره؟ خیلی ممنونم مرسی های. ببینید جن هایی که تا به حال پیدا شده و مستقیما به سرطان و ارتباط هایی که اونم تازه همه درصد داره یعنی ما همه همش محتمل حتی دو تا ژن خیلی معروف هست که تا به حال پیدا شده به صلاح به بی آر سی ای وان برست کنسر وان برست کنسر تو اون دوتا جن معروفی است که انجلینا جولی هم گفتن که میوتیشن درش داشته و اون بسا پیشگیری کرد این دو جن دوتا جنی که فقط تابعه شناخته شده اینطوری نیست که همه جنهایی که ما در مورد سرطانه مختلف باشه الان شناخته شده باشه ولی اطلاعات به صلاح کانسر جنوم اطلس یعنی که یه این خیلی بزرگی است. سال 2006 شروع شده و دارن روی تمام ژنهای سرطان ها مختلف کار میکنن. تا بال 12 تا حسابوال کردم. ولی دارن روی همه این سرطان ها کار میکنن. ژن ها رو بعدن بیشتر معرفی خواهد کرد و همزمان با اینکه ژن معرفی بشه، باهاش تارگت ها ب... شرکت های دارویی همه منتظر اه. این نشستن که یه جنم معرفی بشه که تارگت بشه. و... خوام... بله، می خوام دکتر واقعا سپاسگزار پوزیش از شما و شرکاهایی که دارن زنگ میزنن حتما باید قول بدین که باز تشپیارین و من دلخلت بی اندازه جالب بود. من. بی اندازه شیرین و قنیو آموزنده خای. هفته خای. خوبی برای دوات... همه آرزو میکنیم کنیم. عید اینجا مرسی. قربون شما خانم دکتر. مرسی. خدا بخیر. مرزهای دانش برنامه از انجمن استادان و پجوشگران ایدانی